کتاب افسانه های تنبلها نوشته محمد رضا شمس گوینده سپیده زیایی ارائه شده از کانال تلگرامی <berries> هزار افسان داستان های افسانه صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی این داستان شغال ترس محمد شغال ترس محمدی بود تنبل و ترسو صبح تا شب پای تنور میشست و تکون نمیخورد هر شب قبل از خواب همین که از اتاق بیرون میرفت و دستی به آب بزنه شغال دنبالش میگرد اونم مجبور بود یه مرغ یا خروس بهش بده تا ولش کنه صبح که زنش مادرش بیدار میشدن میدیدن که یک مرغ یا خروس کم شده فکر کردن آخه بابا چه حیوانی اومده مرگ و خروس ها با خودش برده. این بود که تصمیم گرفتن. ببینن موضوع از چه قراره. یک شب نخوابیدن. دیدن که بله شغال ترس محمد به مرگ دونی میره و یه مرغ میاره و به شغال میده. شغال ترس محمد و به باد کتک گرفتن که عجب آدم بیارزه هستی. از خونه بیرونش کردن و درم باشه سرش بزدم. شغال ترس محمد گفت لاغرت تبر و تفنگ و ریسمون که به میخ آویزونه به من بدید تبر و تفنگ و ریسمون رو بهش دادن و شغال ترس محمد حرکت کرد رفت و رفت و رفت تا به جنگل رسید یه گوشه از جنگل روشنایی به چشمش خورد نزدیک شد هفت دیو قطاری نشسته بودن. یکی از دیوا همین که چچش به شغال ترس محمد افتاد گفت عجب لغمهای گیرم افتاده شغال ترس محمد گفت من لغمه نیستم اومدم به جنگم دیوه پرسی چه جنگی؟ شغال ترس محمد گفت سب کن بشینم صحبت میکنم همین که نشست دیو گفت خب حالا حرفتو بزن شغال ترس محمد گفت من میرم کنار این درخت میمونم تو با تمام قدرتت مشتی به من بزن ککمم هم نمیگزه دیو گفت باشه شغال ترس محمد رفت و کنار درخت وایساد و دیوه همین که خواست مشتی به شونه شغال ترس محمد بزنه شغال ترس محمد جا خالی داد و مشت دیو به درخت خورد و آه و ناله دیو شد شغال ترس محمد گفت حالا تو کنار وایسا نوبت منه دیو کنار درخت وایساد شغال ترس محمد تبرو به وسط شونه دیو زد. دیوه گفت عجب مشتی داریم. شغال ترس محمد گفت اینکه مشت نبود. ناخون انگشت من بود. بعد به دیوه گفتش که حالا من از سرم یه تار مو بیرون میکشم که پنج متره. تا مگه میتونی این کارو بکن. هر کدوم از دیوا موی از سر خودشون کندن به اندازه یک متر. نوبت به شغال ترس محمد که رسید ریسمون و بیرون آفرد به اندازه چی و به اندازه پنج متر یکی از زیوا گفت حالا بیا داد بزنیم تا معلوم بشه کی قویتره. تره بعد چنان فریادی کشید که چه بدن شغال ترس محمد شروع کرد مثل بید لرزیدن نوبت به شغال ترس محمد که رسید توفنگر رو در واده تیری درگند صدای تیر پیچی توی جنگل و هر هفته دیو از ترس به زمین چسبیدن دیوا که دیدن حریف محمد نمیشن اونو به خونه خودشون بردن و حسابی ازش پذیرایی کردن بعد ازش خواستن که شب پیششون بمونه شغل ترس محمد گفت من حرفی ندارم اما شما رخت خواب به اندازه کافی دارین دیوا گفتن داریم بعد یه اتاق جدا در نظر گرفتن و رختخوابی براش پهند کردند. شغال ترس محمد که از دیوا وحشت داشت یه کنده زیر لاحاف گذاشت و رفت روی تاخچه نشست دیوا نقشه کشیده بودن گفتن بریم اونو توی خواب بکشیم نیمه شب دیوا چماغ به دست وارد اتاق شدن و شغال ترس محمدم کتک مفصل زدن البته به خیال خودشون خسته و کوفته از اتاق بیرون آمدند. قافل از اینکه لاهاف و کنده رو کتک زدن نشغال ترس محمدو صبح شغال ترس محمد سر خوش از اتاق بیرون اومد دیوا گفتن این دیگه چه جونه وریه اون کتکی که ما به این زدیم اگه به ما زده بودن تا الان هفت کفن پوسونده بودیم شغال ترس محمد سر و روی شست و اومد تو اتاق و دیوا گفتن هلون اگه بهت گذشت میبخشی شغال ترس محمد گفت بعد که نگذش فقط چند تا پشه دیشب روح لافم وزوز میکردن دیوا با خودشون گفتن اون همه کتک و پشه حساب آورده این دیگه کیه خیلی عجیبه بعد از صبحونه شغال ترس محمد براه افتاد دیوا گفتن کجا میری؟ پیش ما بمون شغال ترس محمد گفت من که حرفی ندارم اما شما نمیتونی شکم منو سیر کنید هر وعده من یه خروار برنج و سه لاشه گوسفنده باید آبم دوروبرم باشه تا از تشنگی من نمیرم دیوا گفتن باشه رفتم کنار رودخونه یه خروار برنج بار گذاشتن و سهتا گزفندم گوسفندم سر بریدن وقت ناهار شغال ترس محمد یه لقمه پلو با گوش خورد و بقیه رو توی رودخونه. رود یه خروا برنج و چارلاش گوسفند تموم شد. دیوا گفتن پله حالا اگه میخوایی بری اشکال نداره ما نفری یکی سه پول برمیداریم با تو میهیم. نفری یکی سه پول برداشتن و راهی خونه شغال ترس محمد شدن. شغال ترس محمد تفنگ به دوش به جلو و اونان دنبالش را افتادن تا به خونه رسیدن کیسه ها رو گذاشتن پایین خونه و با شغال ترس محمد به بالا خونه رفتن شغال ترس محمد اومد پایین خونه به مادرش و زنش گفت کیسه ها رو خالی کنید توی اونا کوهن لباس به همین که پرسیدم کیسه ها رو خالی کردین یا نه به این که نه بعد با یه انگوش اونا رو بلند کنین ببرین توی خونه خالی کنید که بدونن که شما چه زور و بازویی دارید زنها گفتن باشه بعد از نهار و چایی شغل ترس محمد از آنها پرسید کیسه آقایون رو خالی کردید زنها گفتن ما که نمیدونیم توی کیسه آقایون چیه هنوز همینجا افتاده شغال ترس محمد گفت همه رو خالی کنین که آقایون میخوان برن زن ها با انگوش کیسه رو از جا بلند کردن بردن توی پست توی خونه خالی کردن دیو با خودشون گفتن ما مردیم تا این پولا رو به اینجا آوردیم اینا زنن یعنی از پهلوان محمد هم پهلوان خالی رو به دوش گرفتن و رفتن وسط را به شغاله رسیدن شغاله گفت کجا بودید؟ گفتن برای پهلوان محمد پول برده بودیم شغاله گفت ای خونه خرابا پهلوان محمد از ترس من جرات نداره از خونش خارج بشه همیشه به من یه مرگ و خروس میده تا پاچهش نگیرم من دارم ازش باج میگیرم اون به من باج میده وقت شما از اون میترسین بهش میگیم پهلهبون محمد دیوا گفتن ما زور و بازو ازش دیدیم حالا چطوری باید حرف تو رو باور کنیم شغاله گفت بیایم با هم بریم دیوا حاضر نشدن شغال ریسمونی برداشت یه سرشو به خودش پس و سر دیگر رو به کمر دوتا از دیوا حرکت کردن. شغال ترس محمد که دید شغال با دیوا داره میاد یه فکر کرد. بعد رو کرد به شغال گفت ای خون خراب مگه قرار نبود هفتا دیو بیاری برای قصابی پس چرا دوتا آوردی بقیهش کجاست؟ هست تا این حرف شنیدن از دو طرف ریسون و اینقدر کشیدن شغال خفه شد همگی به خونه برگشتن شغل ترس محمدم سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار مادر و زنش زندگی کرد